الحمدلله <سؤال> الله عالیه ایران باهری عالم سومن اللهم در به استعمال آقشاتی که با اصول داشتن یکیش هم این بود که به اصطلاح هزارات اخباری ها زواهر کتاب رو رجب نکردن بعد از انتشار مکتب اصول و به مناسبت نفی کلام اخباری ها این بحث خودش که یه عاشق در اصول وارد شد از کردیم از مواحثی که مرضو به قرآن میشه در فقر تقریبا مهمترین مسئله که الان در کتب اصولی فعلی ما وارد شده همین مسئله است تقریبا از همش مهمتر چرا تو بمحث تخصیص و بمحث ببنی از نصف همون جاوردن آن مخواست و مطلق و مغید و و که تقریبا می که روح اون بحث ها هم اینجاست در واقع از صورت که چون صاحب وسائل رزوانو براد فالا علی یه بابی رو قرار زدن و کل روایات رو به قول خودشون در اینجا آوردن از خیلی بر این که زمانت هم بشه در ایشون اون صورت متکامل و پیشتخته روایاتیست که حضرات اخباری ها و او تمثب کرده در جلد 18 از این تاپ قدیم از صفحه سلویس تونه که باب سیزده عباب سفات الغازیست به بعد ایشون دیگه حدود 80 تا روایت به قول خلوشون در اینکه 80 تا نیست در کتابشون اغردن و خود سری کردم که از معارضش هم جواب بدن. ازم که گفتیم برای تبرک و تعمان به روات اهل معلوم شدن مراد آیات کل بینی به واسه ایشون با بخونید. عنوان باب هم باب عدم جواز استنباط احکام نظریه از ظواهر قرآن است. الا بعد بعد معرفت تفسیر هم صلی الله علیه و سلام. از, از کتاب های اصولی ما هم مثل همین کتاب مثلا کتابی که خوندیو هست و استاد دیگران مرموشه قالبن بحث و برمان حضم خود کتاب مطرح کرد. اما از کردم در عباراتی که مرمون ملا محمد امین استرابادی خودش مؤسس این تفکر و این مکتر فکری اوورده بیشون کتاب و سنت رو با هم داره مشهور شده به کتاب چه در ربارت کتاب و سنت با همه یعنی لا ازدود تمسک به اطلاعات کتاب ولن سنه الا بعد معرفت تفسیر آمه نهل بی قید رو ایشون روی ای سنت هم برده وکن الان در کتب و اصولی ما فقط زواهر کتاب مرموم شیخ هر هم فقط کتاب رو آورده، اما تحجیب آقا برای بله عبارت ملا محمد کتاب و سنت بابه بعد از این؟ بله بله راست بابه اینطور ن... یادم راشت نه اینگه بوده یعنی ترجیح نکرد عدم جواز با احکام نظریه من زواهر کلام نبیه اینم حساس و این درسته این دو تایی باشه من این باب رو تا خاشی هم چرا رو زادم خاشی هستم یادم رکنم علایه اونی که مناسبه هر دوبار با همه نه زواهر کتاب در این ایکی من که چارتا حدیث اردو چارتا همین چارتا حدیث اردو در باب چارتا علایه حاله این راجع به اجمال بحث اون وقت عرض کردیم ما ابتداعا بحث و توضیح بریم بعد ببینیم واقعا روایات روی که اقامه کردن ایشون دلالت یا این محطت دائمه قبل از این که این بحث بشیم عرض کردیم که علمای حصول چون بحث قط رو اول آوردن این هم تو بحث زن آوردن تو بحث قط تمیل قاعده کردن توضیحاتش تصالایی روز تو بحث مکاسب هم گذشت اصولا یک بحثی کردن علمای اصول که علم محقوظ در باب تنجیب احکام علم طریقیه این صحب. صحبتی که مطرح کردن اینه اگر انسان علم پیدا کرد به حکم و بر اثر این علم حکم منجز میشه این علم طریقیه و مرادشون از علم طریقی یعنی برای هر شخصی که حاصل بشه از هر سببی که حاصل بشه در هر زمانی که حاصل بشه این علم طریقیه این نکته رو اسماری. اگر این علم طریقی شد پس کلام اخباری ها خالی نخوایی و ثابت تاقض میشه از ورژه می افر. چون اینا میگن که علم شما به احکام از راق قرآن و سنت باید از راه اهل فیض باشه نتیجش این میشه که این علم موضوعی میشه علمی که در باب تنجزه هست موضوعی میشه لذا در کلمات اصحاب ما در بحث قرد هم اونجا هم مرمون شیخ متعرض شد که اخباری ها به قرد حاصل از غیر کتاب سنت اعتقاد ندارن این هم خوندیم کلمات مرمون شیخ و بعد مرشاگردیشون مرمون حاجی نوری و بعد صاحب کفایی و عرض کردیم دو برداشت در کلمات مربوم استراباتی شده یکی اینکه علم حاصل میشه زن از غیر کتاب سنت این هم محلوبی سهاجی نوری و در خاطر مستدفه است در فواهد مستدفه و سهاجی کفایی و عده و یک بحث دیگه که نهی چون مخواد بگه حتی اگه علمم پیدا شدونه علم هجب نیست که ما از کردیم ظاهر کلامش اینه مثل ظاهر احترام مرگومه مولا محمد علی استرابادی پس یه بحث کبرقی داره که کلن در باب قوانی علم که موضوع از در تنجز به سبب علم تنجز فیدا میشه این علم آیا است؟ از هر راهی که شد حجیت دارد. یا این علم است؟ میشه قانون بیاد دیگه علم میکردین راه میاد حجت داره. علم میکردین راه میاد حجت نیست میشه این کارو بکنه یا نه اینا چون حجیت قرط و ذاتی گرفتن گفتن نمیشه بله میتونه بگه شما علم بیهوده در علم مناقشه بکنه او را از علم بودن خارج بکنه و الله نمیشه ما در اونجا توضیح دادیم دیروز هم تو بحث مکاسب آنیده شرفتن توضیح نصفت مفصل را از که نصفت به بحث مکاسب که حق این است که علم موضوعیه علم حقیقی نیست یعنی انصافت در این مسئله حق با اخباری هاست در قوانین بشری در اعتبارات قانونی این امکان هست که مغنم خود مغنم توی مرحله تنزیز تصرف بکنه زیاده ما به این راه بارد شدیم خود قانونگذار میتونه تو مرحله تنزیز تصرف بکنه مثلا بگه اگر شما علم به احکام از راه قیاس تیدا کردیم اون حکم از نیست. این علم به زواهر کلمات اصحاب اصولی اینه که شیخ و قبلش شیخ نمیشه اگر بخواد مناقشه بکنه باید یه علم نداریم ما گفتیم نه هیچ مشکل نداریم علمم باشه و نه حجت نباشه اصولا ارز کردیم تو مرحله تن از جز یکی صغرا هست یک کبرا هست صغرا هست اینکه این مایه خمره کبرا هم که کلو خمرن حرام اونی که الان متعارفه در حال سیاست المدن و در ام اداره جامعه و در قوانین غالبا قانون توی صغرا تصرف نمی‌کنه چون پراکندگی فوق العاده‌ای داره بیاد همراه مکلف یا مواطن بولاغه و شهر و بیاد همراه اون شخص ای این مایه مثلا خونه این مایه بول این یکی بول نیست این اصولا متعارف نیست به خاطر انتشار گسترده‌ای که داره نمیاد مقنن در مرحله تنجز سغرا دخالت بکنه اما تو مرحله تنجز کورا میتونه دخالت بکنه پس نقطه اختلاف مرحوم شیخ با اخباری ها و با ما این میشه که اینا بفتن کورا هم مثل سغرا هست. از هر راهی که این پیدا کرد خمر حرامه. آمدال و از, قیاس میشه. که از, راه و از قیاس میشه از هر راهی این پیدا که این موفقیت پنیش که قد کرده حقوقی که اگر بخویم در سطح حقوقی مثلا احروفه اینه آیا در مرحله تنجز نسبت به کبرا و شغرا یک نواخته این طریقی صرفه یا نه مرحله شغرا با کبرا فرق میکنه در مرحلی امکان داره قانون بیاده اما خیلی سخته این مثل یک ای برد هستن که افراد تکان نمو خواهد من از مرکز اجازه رویه من <تصفيق> دارم مثل این باشه و قول خودشون احضاب و آهنین مگر این تشکیلات آهنین و فولادی توش باشه به الله قوانی متعارف نیست در خصوصیات بیاد به بکنه اما درد در نسبت به خود پنجز نسبت به کوریات با در نظر گرفتن این که ممکنه جه باشه ممکنه اشتباه بکنن ممکنه افراد خودسرانه اقدام بکنن، مغنن میتونه راه های رو بذاره بله اگر نگذاش همون علم اگر نگذاش اما میتونه این کار رو بکنه پس یه بحث این است که آیا مغنن میتونه این کار رو بکنه یا نه بله به نظر ما بله دو اخباری هم میگن مغنن در اسلام این کار کرده قرآن و سنت منشأ قانونگذاری و مستر قانونگذاری هستن اما به شرطی که قرآن و سنت از راه اهل بیت ها از غیر از راه اهل بیت دیگه اعتباری نداره از در قوانین امکان داره مثلا بگه قوانینی معتبره که در روزنامه معین باشه، این روزنامه در مجلس آویزان باشه روزنامه تو خیابون باشه نه این ممکنی مشکل نداره فقط نقطه فنی میخواد یعنی نقطه میخواد این اعتبار قانونی جزاف نباشه مثلا میدونن جامعه فراکنده از ضهورات زیاده افراد ممکن است به راه های انحرافی هر کسی که از, را در از راه در میشه که از هم لوغ و صله و طالبینی و جفر و از این راهها بیان احکام در بیارن میتونه شار ج بگیره محدود بکنه. بعد مثلا میدونه که این غذای با غذای سیاسی رفت فضا میکنه چنین میشه چنان میشه مشکلات رو اینو بیاد چاره مقدرت یا مرجعه مایی رو قرار بده بگه کتاب و سنت بفهم فهم به شرکتی که علیه نبی تالو تفسیر رو کنه فلا صحابی دیگه نه همون قرآن و سنت باشه لیکن بین بی شرکت این به نظر ما مشکل نداره هیچ مشکل خاصی نداره و این که اصل این مطلب که اجمالاً باید تفسیر قرآن و سنت رو از اهل بدگیره این جزوه ارکان مذهبه این در این هم ما بحثی نداریم یعنی نباید اشکال اینا بحث رو از بحث عقائلی به یک بحث اصولی کشیدن و نتیجه بخواستم بگیرن پس در جایی که حتی ما از اهلوید چیز نرشت باشیم به اطلاقات کتاب به ظاهر کتاب نمیشه تمسوکت یا به اطلاقات سنت من ارز کردم مثلا فرض کنیم لازرر آیا لازرر ثابت هست؟ یا نه؟ اینم ما به اهلوید برمگردیم آیا لازرار مفادش نفی حکم یا نه اینم به علوی برمی‌گردید آیا لازرار اضافه برای که نفی حکم کنه اثوات و حکم دیگری هم می‌کنه اینم باید بله بید بره تمام این خ... اما اگر بعد از این کلیات مطلب بله بید برگشتی در موارد مختلف میتونم خودم اون لازره تکلیف بکنم ولی در مورد از اهدابه چیزی وارد نشده باشه ما وقتی کلیات بحث برمی... و روح مطلب رو با رجوع به اهل بیت اصلا وجوه اهل مساله عقائدی است اون که الان در این مساله هست ای مساله اصولی است تمسک به اخلاق در این که کتاب مصدر تشریعه خصوصا بیاد حدیثی صقلی انگیه صحیح هم است اصلا حدیثی در صحیح مسلم هست در صحیح بخاری نیست انی تارکون پیکو مسقله سغل در اصطلاح لغت عرب به معنای بار و متاع است که مسافر با خودش می‌بره اصلا فلسفه اساسی از طرف من نزدیکی که فوز یعنی یوشف عن ادعا متن حدیث من نزدیکی که دعوت الهی رو لبیک بگم تا او از ار... حضرت از حال خودشون خبر بدن و انی تارکون طریق و مستغله کتاب الله و اسلاتی دو بار بار و متا که مسافر اعظم با خودشون گیر رو گذاشتن به شما و اونها مورد پس این حدیث سغله خودش مرجعیت کتاب به رو روشن کرده این جای بحث نیست بحث داری که اگر ما با نظر دقیق بتوانیم کلیات کتاب و کلیات سنت رو در این محاولی که از کردیم از اهل بیت استفاده کردیم دیگه در موارد دیگر میشه به اطلاقش نمستو کرد مثلا اگر ثابت شد که ما لازره در شیعت داریم لازم نیست اون جاهایی که در خصوص روایت آمده نه به اطلاقش نمستو کنیم پس مدعا در حقیقت اینه ما بحث یه دفعه شما اشکال میکنیم که اطلاق نداره خب این اشکال علمی است این بحث اصولی است این بحث اصولی که به اطلاق بعد از احراز شد احراز نشد خب بحث نداره اگر بنا شد که احراز بشه اطلاق یا اطلاق سنت و سنتم با این نکاتی که کردیم که اصل سبوت سنت خصوصیات سنت که من اشاره ای کردم این همه از اهل بهت گرفته بشه این از لیچه آوردن آیا ببینیم جلو این مطلب را میگیره یا نمیگیره ما دیروز چند تا از روایات رو خوندیم ارز کردیم که کل میشه حرق اینها رو از کتاب کافی او بردیم. یکی هم حدیث تا حدیث شما به چهار رسیدیم ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن ایسا ان ابراهیم ابن عمر الیمانی قابل اعتماده بعد. و این که قضایری اشغال کرده محل تعمل هر وساقت ایشان ان سلیم ابن قیس الهلالی ان امیر المؤمنین سروات الله و ایسا به سلیم بحث نیست که جاش اینجا نیست به ذهن ما اینجا سخت داره در سند داریم بعضی سنده اینطوری ابراهیم و عمر یمانی که ظاهره می از عبانه نه در عیاش نهار کرده اصولا کسی کتاب سلیم رو گرفته شخصیست اهل بسته به نام عبان خیلی ظاهر و صلاح و اهل زهد و برم و تقوی بوده در فیم خب خواهی نخواهیم کتاب در تنه سریف در دستگاه خلافت و سقیفه و از خواب ایشان، متهمه یعنی پیش اهل سنت ازهل من از اهل سنت توصیلش کنن ابان غبام و ازاله. مرد معروفی بوده در بستر میشونه ادعا میکنه که من 14 ساله بودم و سلی مرد پیر مرد بوده و پیش من آمده در برسه در فرار بوده این کتاب رو برای من نقل کرده که درش مخاضی و محایب و مشکلات دستگاه خلافه الان یه حالا به ذهن میاد هر یا دیگه هم هست اما به ذهن یا دستند سر رفت راشد شراحض ما حاکید که راوی منحصر به فرد کتاب تا رسوله اوانه نبی عیاش کسی دیگه نیست انا امیر المؤمنین قال ان الله طحرنا و عصمنا و جعلنا شهدا علی خلقه و حجتهو فی عرضه و جعلنا معل و قرآن معنا لانو خارقوهو و لایو خارقونا این کتاب سلیم حالا قیل از بحث تاریخیش بعد از عبارات شکل دقیفه این خیلی متون قویز نیست همین عبارات خیلی قشنگه عبارات خیلی زیبایی هست حالا اگه حالا این بحث ها که بحث عبارقی توضیح دارم بحث کلامی رفتی رفت و اصولی بعضی باز مرتبه مرحوم شیخ کلینی قدس الله نفسه انه عدت من اصحابنا انه احمد ابن محمد که اشعالی انه حسین ابن سعید انه نظر ابن سوید انه ایوب ابن الهر انه امراد ابن علی حلدی انه عبی بسیر انه بیعبدالله حدیث معتبر قاله نحنو الراسخون فیلعلم و نحنو نعلم و تعویده حضرت فرموده چون فرمود خدا و نعلم و تعویده و الله. و راسخون در راسخون فله در بحثای بودشه اشاره کردن که حالا اولا راجع متشابه صحبتی شد اشاره شاد شد این اشکال معروفه یعنی که از بحث‌های بسیار معروف قدیمی است از زمان صحابه مطرح شده در کتب اهل سنت هم هست الان هم این بحث به قراعت هم کشیده شده که چه جوری قرائت بکنیم برا... و لا مما علم تعویلو الا الله اینجا الان وقتی بشه قطعی بشه ور راسخون فلعلم یقولون آمننا کلون آم... من اندرد بنا این ور راسخون فلعلم مبتداست یقولون یا این جور بخونیم ما یعلم و تعویل بو الله ور راسخون فلعلم یقولون ناشی آمننا یا کلون من اندرد بنا آیه مبارکه الان یحاله این از همون احد صحابه محل کلام بوده؟ حتی در کتب اهل سنت داره که کان ابن عباس یقول نحن الراسخون فرعه و کان یقول انم من اعلم و تعبیره از احد الصحابه همین مطرح بوده خیال نثار مسئله بوده که ابی عبدالله در زمان ابی جعفر ما قبل از ابی عبدالله و ابی جعفر مجاهد که از تابعین مفسر معروفی است اونم کان یقول انا اعلم و تعبیره انم من من و تعبیره از این از احد صحابه به این تا بعد و الان محل اختلاف قرآن هم هست که این آیه مبارکه چطوری قرارت بشه از مجموعه روایات اهل بیت معلوم میشه که و ما علم و او الا الله و راسخونه فلعن قطع توش نذاره یا سکوت توش نذاره این یک روایت روایت دیگه روایت شماش این روات تنشم معتبره ان علی ابن محمد استادیشان بد نیست ان عبدالله ابن علی خیلی عملش برای ما الان روشن نیست احتمالا نوی وعدی باشه. ان ابراهیم ابن اصحاق ایشون تضعیف از خطب اصحاق قلوب ان عبدالله ابن حماد انصاری خوبه شما نازی بحث سندیلی مخیل بکنم ان بورید ابن معاویه ان احده ما. فی قول الله عزّ و ما يعلم و ما یا علم تعبیله او، الّا الله و راسخون فرانتقاد کنه. این اشاره سهم خلاف قديم قبلی که قبل از اهل البيت این خلاف مطرح شده. فراشول الله اخذ راسخین فل اهل، علم قد علمه الله، جمعی ما انزل عليه ما, ما انزل عليه من التنزيل و تعبيل، زما کان الله لي انزل عليه شيء لا يعلمه تعبيله و اوسیاؤه من بعده یعلمونه هون سنده حدیث این دا رو داره به خاطر اربایم اصحاب و عبدالله ابن علی اما مضمونش معیده به روایت دیگریه روایت شماره هفت اینا همه روایت کلامی است، توی بحث اصول نداره انر حسین ابن محمد استادش که از بزرگان ان معلیم محمد که توصیق نشده حالا تزییفی هم شده عن محمد ابن اوربه که ایشون هم تضعیف شده به خاطر خط قلو عن علی ابن حسان ایشون هم تضعیف شده یه علی ابن حسان که از بنی هاشم اینه این شخص این تضعیف شده یه علی ابن حسان دیگه داریم تضعیف نشده عن عبدالرحمن ابن کفیر میگن در اون زمان کفیر نمیگفتن کثیر میگفتن به صورت تصغیر عن علی این یکی ای هم تضعیف شده اصولاً حدیث به استای اولش و آخر که امام معصوم تمام این طبقاتش تضعیف شدن. اما ی بدبدله خال از راسخون فرعلم امیر و تو من ولده. از چون مضمون روایت زیادی مشکل سندی خیلی چیز نداره و باها در باز و ما علم تحویل او الله و راسخون فلعلم قال امیر الممین و امه احتمال میدن. این دو تا روایت بله یک, یک روایت بوده حالا به دو لحن بوده در دو نسخه بوده در روالله عجیب کافی در یک باب هر دو رو برده مرغوم روایت بعدی در شماره نو اگر آیون کتاب خدمتشونه هست اینه که اینجا من دارم آیون کتاب شاک و آلو نگاه اینشون نوشته ان احمدن و محمد اینطور نرسه آیونی که چاکی نه نه. آشیه چیزی ننوشته احمد مهران بیمهران. بله توی کافی الان احمد ابن مهرانه نمیدونم چطور شد شده مگر نسخه سال و وسائل غلط بوده یا نسخه ما غلطه الانی اونی که الان در کتاب کافی هست در این نسخه مفروع احمد ابن مهرانه الان تویشون احمد ابن محمد نمشه نمیتونم سردانه الانی حاله من احتمال دارم که نکنه این چاپ اشتباه حالا می تمام در چاپ آبی بیشم در همون نصفه آخر حساب وسائل هم بوده معلومش و انه احمد ابن محمد ارز که این قلطه احمد ابن مهران البته راجع به احمد ابن محمد اگر در اول اسناده کافی باشه یه توضیح داره که بعد ارز این الان اینجا متعرضی این کنه نداره و احمد ابن محمد که سعیش احمد ابن مهران. ان محمد ابن علی ان حماد ابن عیسی ان حسین ابن مختار بعد نیست میشه الان یه حال تفسیرش ان ان عبی سبقات خب تا اینجا ساب وسائل چند تا حدیث اردن در باب راسخونه خیلی علم اینجا باز عوض میفرماید ان عبی بسیر قال سمعت و عواجعفر یه بود فیهاز هل آیه بله و آیات و آیاتون بینات به صدور لذین و او طول علم به سیغه مجهول آمده که خداوند اینها علم داده به سیغه مجهولی تو اینجا فا او ما... یا فعاو ما به یه دیگی صدره که من جدون دو هست داشته به احمد ابن من یه ذهبی هم ارز کردم مرحوم کلیمی مجموعا حدود 67 نفرند پس8 از مشایخ رو در کافی نام برده که ما یار کلن نمی شنسید هیچه آشنایی ازنا نداریم اینا کی هستن چه هستند، هستن ادعی هستن از مشایخ ایشون که واضحه مرز از شیوه حدیثن هیچ آشنایی وی اینها ما نداریم که جناب احمد ابن مهرانه که هیچ آشنایی با ایشون نداریم فقط ابن قزائری نوشته احمد ابن مهران روا عنه کلینی ضعیف بود هیچشم نکته نمیگه که این چیه چه نکته‌ای که هیچ متعرضش نشوده با نشده، متعرضش ایشون احمد ابن مهران نشده. حالا برای ما اصلا ابهام داره چون ممکنه گاهی اوقات اسم رمزی باشه اسم حقیقی نباشه اسم مستعار باشه به هر حال چون بر ما الان البته در مواردی که ایشون از این احمد بن مهران نقل کرده در بعضی از نسخ در یه مورد بعضیا تا سه مورد ایشون رحمه الله هم داره هم برای مشایخش رحمه الله نمیگه هم آدم خیلی عجیبه احمد بن مهران رحمه الله این هم داره البته هستم نسخ کافی مختلفه تو بعضی یک جا هست بعضی هاش تا سه جا هست بحثی کرده مرومه های با اون آکه اینطور نیست که ستا نه نسخ کافی مختلفه در بعضی از نسخ بیشتر، در بعضی از نسخ کمتر. کار این هم یک نقطه عچید که ازشون تقریب به رحمه الله کرده متعارف نیست از مشایخش مرومه صدوق یا در رضی الله بله زیاد داره رضی الله هست اما ایشون تعجب احمد ابن نمهران مجهول رو تربیر که مجهول بالاتر از هیچ آشنایی ما با ایشان نداریم به نحوه کلی اون چی که از روایات ایشان من استظهار میکنم در کتب رجالی دیگر نیست به نظرم حالا یا اهل ری بوده یا اهل قم بوده به احتمال قوی، شخص شخصی بوده که علو اسناد داشته حالا با غیر از جهالتش احتمال میدم کولهی رو علو بی اسناد بین اعتماد کرده مثلا در همین کتاب کافی از از مرحوم عبدالعظیم حسنی نقل میکنه اما با دو واسطه مرحوم کولهی از عبدالعظیم حسنی با دو واسطه نقل میکنه مثلا از اداد من از اصحابنا بعد از احمد برقی از احمد برقی از عبدالعظیم حسنی و در چند مورد از این احمد ابن مهران نرمون از عبدالعظیم حسنی به یک واسه لذا احتمال میدم از مشایخی بوده در قوم حالا مشایخ درجی دوسه که کبیر و سن بوده اده از بزرگان رو در کرده کلینی رو این جلد از ایشون نرم کردن به نظر من این طور میاد که بی ذهن منده میاد اصلا کسی ننوشته. هیچ رجالی هم از جالین ما متعرضه این نکته نشده به نظر من کلینی رو قربه اسناد و اولو اسناد به ایشون عنایت داشته علایه‌حالم به نظر میاد که این محب باعث هم محمد ابن علی به نظر می همون سیرفی ابو سمنه باشه که کلینی از ایشون به دو واسطه نقل میکنه از توسط استادش از, از برقی از ایشون اینجا یک واسطه احتمال قوی که من میدم مرموم کنیه احتمالش روی ایشون که بوده حالا استاد معروفی در قب نبوده شیخ معروفی نبوده و علوه اسناد داشته مثلا به واسه ایشون از عبدالعظیم نقل نقل میکنه کلینی الله نفسه و احتمالا جهت نقلش این باشه و الا احتمالا نقل های او در آن موجود بوده به هر حال محمد نعبی بعدش محمد نعبی سیرفیس ابو سمینه قیدی راجع به ایشان گفته شده که کذاب و از شرار کذابی توضیحات های سابقا ارز کردیم اینجایش اینجا نیزم اما هم مادر نعیسا کردم خب من تا مختصر میگم خوب دقت بکنیم چون ما در احادیث اون یک نکاتی داریم که اهل سنت نداریم اشتباه میشه کسایی که در بحث میشن. زتنشون مشوب باشه به افکار اهل در معرفت با مشکل برخورد میکنم. از که محمد بن علی کوفی ولو تذییر شده، حتی گفته شده اشعر کذابی. لکن ایشون خودش از امام نشیده، ایشون راوی میراث اصحابیست که از کوفه آورده. محمد ابن علی میاد قوم میراث اده از اصحاب رو از کوفه آورده. تا مدت که هم خب میازش کردن بعد که این دروغ میگه بیرونش کردن از قوم. احمد عشقریشون از خون بیرون کن حالا دروغ گفتم گفتم توضیح توضیحی داره که چیه به هر حال این از کتاب همماد ابن عیسی از ظاهرش واضحه این جزه کتاب است که ایشون بقا بوده همین محمد ابن علی انر حسین ابن مختار اندبرسی این اون سند اولیست شماره 9 که به لحاظ ظاهری مشکل داره و قابل توضیح هست حدیث شماره ده مر... باز مرخوم کلینی انوهو باز همون احمد ابن مهران ان محمد ابن علی باز همین سیرفی ان ابن محبوب با این توضیحاتی که من دارم تاریخ حدیثم برای خوب روشن میشه کتاب های ابن محبوب در گروفت فوق عاده معروف بوده من عرض کنم کتاب های حسن محبوب در زمان خودش میشه کتاب عربه در زمان خودش این نسخه از ستا به این محبوبه روشنه چون تاریخش اینه کلیمی وقتی نعقیب کنه احتمالاً با بقیه نسخ مقابله کرد که موجود لذا نعقیب این اشکال قرار تو زهنتون بیاد مثل اهل سنت که چون اونا یکی رو به قول ما به مسلکه رجالی تنقیب و تصیب و تضعیف میکنن یا توصیب و تضعیف میکنن ما مبانی فیلستی اونم در مذر ب طوری ایشان روشن برای ما توسط محمد بن علی سیروسی به قوم آمده و مرحوم کلینی با یک طریق مختصری قلوب اسناد از این نسخه نقل کرده انا عبد العزيز عبدی عن ابي عبد الله البته عبد العزيز عبد در قم تضعیف شده فقط ابن ماحو که از بزرگان ازش نقل فی قول الله عزوجل بره آیاتون بینا فی صدور الذین او العلم قالوا هم الائمه علیهم این هم یه روایت دیگه در تفسیر این آیات بینات حدیث شماره یازده و انهو بازم احمد ابن مهران ان محمد ابن علی ان عیسی این هم بیگه واضح شد چون اثمان میشه عیسی کتاب داشتی اون همون نسخه که به قوم آمده ان سماعه ان عبیبسیر اصولاً سماعه مقدار زیاد روایده شد عبیبسیر این بحثی که من دیروز شاید هم شاید باشه. بله ابو بسیرم در اون رات قبلی هم هست شما دو هم هست قال قره ابو جعفر حاضر آیه بله ها آیاتون بیناتی صدور و لذین او این آیات الهی در سینه کسانی که خدا اونها رو علم داده سلمه قال اما و لالیا عبا محمد ما قال ما بین دفت المصحف نه همون آیاتون بگیناتون در این کتابی که چاپ شده بازن در این اورا کتاب آیاتون بگینات فی صدور سینه امام مخواهد بیمکن ما قال ما بین دفت علم و مصحب من هم جو التفدار این الهین اوتل علم کیه اصلاه که آیاتون بگینات در سینه اینها قال من اصاعن یکونو غیرون ها ظاهرم غیرون ها من اصاعن یکونو یعنی به اصطلاح غیرنا یا محتضا باشه یا برگرده به اصطلاح کلام بشه فصل کلام الان احتمالا غیرنا خیلی بعیده به نصب خونیم ما این روایت رو داریم و اصان دیگه هم و انعبی برسیل من اصان یکونو غیرنا باز حدیث دیگری ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان یزید شغر یزید ابن اصحاق ان اینجا نشته هرول ابن حمزه اونجا همیتا چه خود هارون این، هرول غلط ان حارون ابن حمزه غنوی بل ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یهود بل هو آیات و بینات فی صدور الذين مطلعه آل همول احمت خاصه یه امثال ابو حنیف و شافعی خارجم خصوص ائمه سلام الله علیه مجمعی درست اصل مطلب درسته این, این دور که سندش هم معتبره اجماله البته یزید شغر توضیق توضیق سریعی نشده لیکن شواهدی هست و قبولشی چون نمخواهد بحث رجلی بشه حدیث شماره 13 ان علی ابن محمد و محمد ابن الحسن اینا دو نفر هستن که کلیمی ترسطی اینها از سهل بزیاد نرمی کنه مجموع شارتان مجموع مشایف کلیمی به سر تا وقتی از چارتان احرم بکنم یه ادتا من از ساون از هم مثلا یه محمد حسن از سر یکی گاهی دوتا این بعضی احتمال در تفنان در عبارت محرم کلیمی تفنون در اوراد نه، بعضی هر چهار تا و دایی میگه، و دا دو میگه. ما گفتیم چون چون یه حدیث شناس بوده‌اید، اسبت و ناسه فر حدیث، با اوسابا و همفی، اینطور تفنن باشه. ظاهراً اشاره به اینه که وقتی یه اداسو من از در هر چهار نسخه است، وقتی یکی در یک موسسه، ظاهرش میشیم دیگه داینال این ظاهر رو بر تفنن بکنیم. وقتی دو تا اسم مری در دو نسخه، سوالش واض اینطور باشه، یعنی ایشون بخوأن تفنن بکنن، گاهی بگن 4 تایی، بگن دو تا، گوی بگن یکی، خیلی هم بر تفنن که در بعضی از عبارات من در اسم میبرن، خیلی دور از آبادیه. ظاهرا ایشون با دقت و ظرافت خاصی میخوان بگن در تمام نسخه‌ای که از سرد داریم هست، در 4 هست، در دو تاش هست، در یکیش هست، روی نکتهش این باشه. ان القاسم ابن ربی قاسنبی اهل کوفه است صحاف هم بوده تقریبا به اصطلاح روزی ما انتشاراتی بوده یه مقدار به نظر ما بعد از کتب مقصد خط قلو توسط ایشان پخش شده و این مطلب رو نجاشی یا دیگران نداره یه استظهار شخصی خودن کسی از جرم نهیدونه باشه. باشن ان عبیدالله ابن عبدالله استگرفی نمیشناسیم. ان امر ابن مسعب ان سلامت ابن محرز اینا رو درست نمی حالا یک راهی برای بعضیاش هست اما قال سمت آقا جعفر یا کل این من علم علم آوتنا تفسیر القرآن و احکام آن. این احکام قرآن این شاید درد ما نهنویی بخوره شاید. اما باز هم معناش این نیست که تماس که به ظاهر قرآن کرد و بعد هم به علم تغییر زمان و حدثانی لذا امام زمان گفته میشه علم زمان هم پیش ماسیه نداره در هاشش مرحوم آی ربانی این رو توضیح بده حدیث بعدی از محمد ابن یحیی ان احمد ابن عبی ظاهر این احمد ابن عبی ظاهر از وجه های بوده و شاید شخصیت سیاسی بوده وجیه بوده چه عشیره بوده و قوله معروف سالم بوده بوده. و ایثار بوده خاجی بوده علایه‌هان لكن و حدیث هم نقل کرده اما خیلی حدیثش اونطور نیست ان الخشاب سبع بن یده ان علی بن حسان عن عبد الرحمن بن کثیر این همون شخصی سی گفتم خودش و عموش هر دو ضعیفند این علی بن از عموش نقل میکنه قال الذي عنده علم من الكتاب راجب باصفه الا انقلاب اندنا و الله هی علم کتاب کل البته رواياتي در اين جهت داريم که آلي علم کتاب امیرالمومنين و العเمت. اين روايت بعدي علي ابن ابراهيم انبیه يکي محمد ابن يحيى و محمد ابن دو تا جمعي امن ذکر او جمعاً آن ابن ابی امیر و ان ابن ازینه ان بوره این حدیث سهیه سندش قال قلتل عبی جرقل علیه السلام قل شفا بالله شهيدا بینی و بینکون من اندهو علم کتاب البته اهل سنت من اندهو اهل علم کتاب رو به بزرگان يهود زدن اخبار یهود عبدالله عبدالله سلام که این گفت این قلته قال ایانا انا ما مقصودیم و علیون اول اونا و و اخر ز و نا و خیر و نا بعد از نبی صلی الله علیه یه شب فرزه چون بابا فرزه تمامش شده این طلبه رو درو کرده به مراد از فرضا فرزه درسی چون فرزه که ظاهرا شهادت فرزه جواب تعطیله